تقدیم نامه اگر بخواهم این کتاب را به کسی تقدیم کنم بعد از تقدیم به پیشگاه نورانی خود اهل بیت علیه السلام که دلیل اصلی سرودن این اشعار بودند باید این کتاب را به مادر بی نهایت عزیزم تقدیم کنم که هم من را در مداهی بسیار تشویق می کردند و هم در سرودن اشعار آینی مشوق خوبی برای من بودند. سپاس از همراهیتان، ارادتمند شما، محمد جواد بوستانی. لحظاتتان مملو از نور خداوند متعال.